بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة اللہ بالله العلی العظیم و صلی الله علی و سیدنا محمد و الله اللہ علی محمد محمد و آل محمد, محمد و علی و احل بیت تیبین و الهدات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله في السماوات والارزین افیقیز به همدنا در پهنای سخن بیزوال امیر المؤمنین نشسته و استفاده ها میبریم از شرح خطبه نورانی قاسعه امیر علیه و علیه السلام فرمود ذات باری بنا رو بر بنین گذارد که فرشتگان و ملاکه نزدیک خیش رو اینها رو اختبرن اینها رو یک مهکی و ایاری بزند لیمیز المتوازعین من هم من المستكبرین تا متوازعین را از مستکبرین در میان اینها میز دهد جدا کند و نشان داد به ایشان اونگاه فقال سبحانه و هولا آلب و و محجوبات غیوب. خداوندی که آلم به تمام اسرار و درون و نهان از چگونه چنین کاری رو انجام داد شرائط چنان بود که بحث خلقت انسان پیش آمد خواندیم که امام به اشاره فرمود که فرمود من خالق بشر از تین و گل خواهم بود هنگامی که تصویه کردم و او را کاملا پرداختم و نفخت و فیه من روحی و از روحی که متعلق به من است در اون دمیدم فقع او ساجدین پس برای او ای فرشتگان به سجده دارایید من به دلیل این که سآل هم می شد دوستان عزیز ولی اون که در بحث تفسیر این آیات رو گفتیم اما همین اشاره رو محذر بارکتون داشته باشم این روحی اینیهی ای که مشاهده میفرمایید خداوند برای شرافت مطرح میفرماد. یعنی روحی که وابسته به خداوند است نه روحی که جز ازات باری تعالی و نفس الهی است مبادا چنین تصور غلطی؟ که شاید در بعض از فرق همچنین فکری و خیالی وارد شود، جسم، جان، روح و جسم انسان مخلوق خداونده است سوده مبارکه مؤمنون ثم شعنا و خلقن آخر هنگامی که جسم روزات باری تعالی میفرماید فرماید تمام کردیم. اونگاه میگوید یه خلق دیگری یه مخلوق دیگری آفریدیم به این جسم ملحق کردیم یعنی چی؟ یعنی روح ما یعنی جان انسان پس روح انسان هم مخلوق خداست اگر میفرماد روحی مانند اون که میفرماد بیتی خداوند کعبه شرافتی میدهد به عنوان خانه خود این روح که اضافه به ذات باری میشه از باب این است که شرف روح انسان رو حضرت حق نشان میدهد نه اینکه روح جزی از روح ذات باری تعالی باشد روح خداوند قابل انفکاک نیست مخلوق نیست بنابراین نباید چنین تصور غلطی باشد فرموت فیضا سویتو و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجتین فسجد الملائکه كلهم اجمعون همه سجده کردن تمام الا ابلیس جز ابلیس اعترزت هل همیه على آدم آدمه به خب من همین جا ها اشاره میکنم دیشب هم خب به نوعی خوشبختانه چون بحث بحث آیه پنجاه سوره مبارکه که خدمت دوستان داشتیم در مباحث شبها یه اشارات مختصری اونجا شد الان هم به نوعی و در طول این خطبه انشاءالله امروز فردا و در نوبت های آینده به این موضوع بیشتر پرداخته می شود از ابعاد متفاوت اشاره شد ابلیس اسم است می گوید آدم ابلیس انسان شیطان یعنی هر کجا؟ جنس مطرح میشه انسان هر کجا فرد متره است، علم متره است، آدم در قبال اون ابلیس یعنی این دو اسم شخصند. گاهی به جد جنبه مزاح هم پیدا میکنه به دوستان عرض میکنیم که هیچ کدام از ما آدم نیستیم و آدم هم نخواهیم شد چون آدم یه فرد است. ما تمامون انسانیم و بنی آدم فرزندان آدم هستیم هیچ کدام از ما آدم نیستیم چون شخص او آدم یا آدم اون فرد اولی است که ما بنی آدم و فرزندان او هستیم نقطه مقابل او ابلیس است ابلیس دار و دسته و دودمان او را شیطان و شیاطین میگوییم آدم و فرزندان او را انسان میگوییم فرمود الا ابلیس جز ابلیس واژه ابلیس هم اشاره شد که عربی نیست قطعاً عربی نیست اشتباه است اگر بعضی از لغویون عربی این رو ریشه عربی برای اون قائلند این غیر منصرف عجمه یعنی عجمیت داره غیر عربی است و علمیت داره به همین خاطر الله، ابلیس در موارد جر هم می‌بینیم منصوب میشه و کاملاً مشخص است که اسم است و غیر عربی است حالا این دیابلس یونانی است یا مشتقات دیگه داره احتمالات این مورد تایید است فرمود الا ابلیس اعترزت هل همیه ففتخره هلا آدمه به خلقه من همین جا یه اشارتی میکنم و انشالله لابلاگی این خطبه نورانی امام این موضوع رو بیشتر خواهیم رسید گفتیم دیشب هم در عراضی که مطرح شد در ماهیت ابلیس اختلاف هست عزیزان یعنی این که ابلیس چه ماهیتی دارد و چه وجودی دارد دو دسته یعنی دو گروهی که توانمندند از بزرگان علمای اسلام دو گروه و دو طرف ایست یعنی شاگرد و استاد مثلا تصور بفرمایید شیخ مفید رو می‌بینیم، سید مرتضی رو میبینیم شیخ توصی رو می‌بینیم، صاحب مجمع امام المفسرین مرحوم تبرسی مجمع البیان رو می‌بینیم این بزرگان در مسئله ماهیت ابلیس اختلاف دارند این که یا ابلیس از ملائک بوده است یا نه سیاقات ادبی در این جهت تردیدی نمی گذارد من سریحا نهاز می کنم از جهت ادب یعنی اگر کسی به قوائد ادبیات یا تعرب ان بخواد به قرآن مراجعه کنه در مشابه این آیاتی که امیر المومنین دارن می فهمان فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس اصل در استثناء اتصال است یعنی اینکه شما فردی رو که در مجموعه قبل بوده است برون میکشید بعد میارید میگویید که تمام میهمانانی که دعوت شده اند آمدند الا آقای فلان یعنی آقای فلان جزء میهمان ها بودند یا نبودند جز میهمان ها بودند اما نیامده اند یعنی یه فرد رو از قبل از الا برمی دارید میذارید بعد از الا این قاعده الله به استثناست در کلام عرب که استثنا متصل باشه نه اینکه شما فردی را که خارج از مجموعه قبل بوده بعد از اللامت ره کنین این قانون کلام عرب است این قاعده ابلیس با جز فرشتگان و ملایکت الله باشد که بعد بفرماید الله ابلیس این قانون ادب. بزرگانی مانند شیخ توسی به این مبانی تکیه کردند عدله دیگه هم دارند که من جمله خود همین خطبه نورانی امیر رو هم میبینیم ملامت و مزمتی هم که خداوند مطرح کند بر ابلیس ما که الله تست جده از عمرتوک چرا هنگامی که من تو را امر کردم سجده نکردی میگویند اگر ابلیس معمور نبود مورد معاخذه خداوند قرار گرفت. گروه دوم معتقدند در پاسخ این مسائل مطرح میکنند که ابلیس جنی بود، موجودی بود با همون معنای جن که در ذهن مبارک شما میاد یعنی موجود خاصی که سنف رو لکم ایوها سغلان یا معشر الجن ول انس همون جنی که گاه در قرآن در کنار انس قرار میگیرد میگن این جنی بود که ارتقاء مقام پیدا کرده بود در حدی که توانست در سنفو و در صف ملائکت الله در عالم کروبیان و قدسیان به عبادت ذات باری تالا بپردازد یعنی به شد یه نفوزی در میان فرشدگان بود اون گروه اول چنین توجیهاتی را نمیپذیرند پذیرند میگن در بارگاه قدس که جای ملال نیست چنین بحثا وجود نداره اونجا دیگه وارد شدن و داخل شدن و کسی جان خوردن و نخوردن این مسائل مفهومی نداره اونها یه مقداری با های زریفتری به مسئله نگاه میکنن و این گونه پاسخ میدن اما باز این گروهی که معتقدند ابلیس ملک نیست و از فرشتگان نیست بلکه جن هست به همون معنا که گفتند گذشته از این که به این ظاهر پنجاه آیین سوری مبارکه که استناد میکنن کنند کان من الجن ففسقه هنه امر ربه میگن گن فرشتگان موجوداتی هستن قدسی، پاکیزه، منزه آری از خطا، آری از اشتباه و یه اسمتی در فرشتگان وجود دارد لا یعصون الله ما همرا اینها انسیان نمیکنند در چیزی که خداوند به اینها امر کند ففسقان امر ربه برای فرشته و ملک معنا ندارد که بخواهد از امر خداوند تمرد کند جماعتی که ابلیس رو, ابلیس رو از ابلیس را فرشتگان میدانند در قبال این گروه و این جماعت محترم دیگر از علما و این دسته مقابلشون معتقدن میگن شما بیاین در مبانی شناختن فرشتگان تجدید نظری بکنید آفتاب آمد دلیل آفتاب عدل و دلیل نهلا امکان شیء وقوع شی همین که میبینید خداوند به این سراحت بازگو میکند ابلیس و جز ملائکه الله بیرون میکشد و کلماتمانند اون که امیرالمومنین در اینجا میگوید نشان میدهت که فرشتگان همهشون یک جنس و یه سن نیست فرشتگان الهی مراتب متفاوتی دارند و ما مننا مقام معلوم هر کدام یه جایگاه معلومی دارند همشون در یه حد نیستن اولی اجنحت مسنا و ثلاث و ربا اینها توانشون در دو حد دستگاه در سه حد دستگاه در چهار حدس اینها مراتب متفاوت دارند لذا ممکن است ابلیس از نو آن فرشتگان است که اختیار به او داده شده است یعنی می توانسته از تمرد کند و می توانسته است تمرد نکند این نظر این بزرگان اون جماعت هم چنان میگویند در روانیاتی که از معصوم داریم هر دو دسته رو از ایزان میبینیم میخوام عرض کنم قضیه قضیه ساده نیست یه پیچیدگی هایی در این مسئله وجود داره من فعلا طرح مسئله رو در همین حد می کنم و شاید بیشتر رو اجازه بفرمایید که این در جای خودش در مباحث تفسیری ارائه شده است ارائه میشه در ادامه این خطبه هم باز در فرازهای مناسب من این قضیه رو سعی می کنم که بیشتر محضر مبارکتون بپردازیم امیر این فرمود بعد از ذکرهای شریف الا ابلیس همه سجده کردن جز ابلیس اعترزت هل حمیه اعتراضات او اعتراضات او از ماده عرض و آرز میاد بعد از اینکه خداوند دستور داد که در قبال آدم سجودی دست دهد و فرشتگان الهی تواضع کامل بکنند بر ابلیس همیت آرز شد یعنی در وجود او پیش آمد با چنین صحنه‌ای نبود اما با چنین صحنه‌ای که مشاهده شد و مقابله شد یه همیتی در وجود او پیش آمد دیروز همیت رو توضیح دادیم اون افراتیگری توند اون داغی اون شدتورزی در یک مسئله رو همیت میگویند فرمود اعترزت هل همیه ففتخره لها آدمه به خلقه خوب دقت کنید عزیزان اینها ریشه ها و مبانیست دیگه میرسیم انشاندها به اون مطالب کاربردی که حضرت تو زندگی خودمون. فرمود ف... ففتخر علی آدم به خلقه و ابلیس افتخار کرد فخر فروشی بر آدم کرد به خلقه یعنی به سبب خلقه یعنی به سبب به سبب اون ماده وضعیت و کیفیت خلق خودش الان توضیح میدم خدمت دوستان و تعصب علیه به اصله و تعصب ورزی شدت باز دیروز گفتیم عصبه وابستگی و شدت یه شدت پافشاری و یه اصرار ورزی کرد علیه در قبال آدم لعصله برای اون اصل و جوهر وجودی خودش و مایه اولیه خودش و چی بود اصل و جوهر وجودی خودش که بر اون تعصب ورزید این از آیات شریفه می که میگوید گوید خلقتنی من نار و خلقتهو منتین خدا یا من ماهیت وجودی ناری دارم و آدم ماهیت وجودی خاکی و ترابی و تین دارد خاک پدیده است تیره رو به پایین می آید اما نار پدیده است روشن رو به بالا می‌رود ما تفاوت وجودی داریم استهزار دارید مراد از ناری که در اینجا مطرح میشه که خداوند می‌فرماهد در این شریف ما جان رو از نار آفریدیم یا اینکه ابلیس میگوید من از نارم نه این آتشی که شما گرم میکنید دستتون رو میگیرید این این آتش نیست این ماده ی آتش نیست جنس این ماهیت اون دیگریست و استظار داشته باشید این رو هم اضافه میکنم خدمت دوستان عزیز کنار 14 کارایی در فرهنگ عرب داشته است و در زبان و ادبیت عرب داشته 14 قسم نار داشتیم و بیش از آن که آتش عامل گرما بخشی باشد عامل روشنایی دهی و نور بخشی بوده است شما به گلدسته مساجد در کلام عرب چه میگویید؟ مناره مناره یعنی جایی که در آن نار میگذاردند ترجمه این فارسی کردیم شد گل دسته گل یعنی آتش دسته یعنی جایگاه گل دسته یعنی شد جایگاه آتش توجه دارید خب این غیر معزن است ایزان اشتباه نکنیم معزر یعنی جایی که کسی برود بالای اون اذان بگوید یعنی محل گفتن اذان اما این گل دسته بوده این مناره بوده یعنی جایی بوده است بلندا و مرتفعی که برای اون گمشدگان وادی آتش رو روشن می کردن. اون بالا آتش رو می دیدن شعله اون رو می دیدن. راه رو پیدا می کردن می آمدن برای گرمای کسی نبود برای راه دیگران بود یعنی نار ماهیت نوری دارد در بسیاری از موارد کاملا نشاندهنده روشنی بخش و روشن. در گذشته بالاخره خونه ها رو با چی روشن می با شعله های آتش با چراغ‌های پیسوس با همثال اینها روشن می کردن. پس خود نار یه ماهیت نوری هم درش وجود دارد خلق تنی من رو از ماهیتی آفریدی این چنینی اما این ابلیس از خاک است. از گل است من شرافت بر او دارم یعنی به اون اصل و جوهر اولیه‌ای که ایجاد شده است افتخار و حالی که هیچ حق افتخار نداشت هیچ حق عصبیت و تعصب و افتخار نداشت به دلیل اینکه ابلیس یا آدم در انتخاب ماهیت اولیه‌ای خودشون هیچ نقش خودخیمی ندارند کسی در پدیده و موضوعی که نقش و سهم نداره که نمیتواند افتخار بکند نه آدم جنس خلق خودش رو انتخاب کرد نه ابلیس جنس خلق خودش رو انتخاب کرده است خداوند رقم زده است آدم را از خاک و ابلیس را از نار بفرمایید ابلیس را از نار هیچ این نقشی ندارن در ماهیت وجودی خودشون پس افتخار به چیزی که انسان ندارد نقشه در اون ندارد دخل در اون نداره اصلا معنا ندارد افتخار کردن به این چیز یک دوم آن چه در وجود آدم بود خاک آدم نبود بلکه آن در وجود آدم بود جان آدم بود اون بخش دوم بود فیرا سویته و نفخت فیه من روحی بود اون روح پویا پر که خدا است که خداوند با آدم داده است که توانمندی جذب اسما و صفات جلال و جمال الهی را برتر و وزونتر از تمام پدیده های خلقت دارد این مقامی است که انی فل فلعرض خلیفه است این مقام خلافته که خداوند چنین جایگاهی رو به آدم داده است دیو از آدم نبیند غیرتین دیو از آدم نبیند غیرتین توز قرآن ای پسر ظاهر مبین دیو ابلیس آنچه دیده است به تعبیر شاعر آنچه میبیند ظاهر آدم است ظاهر آدم است. یعنی اولین نکته این که خوب همینجا من ارز کنم خدمت دوستان در مباس شیطان مفصل این مطرح میشه اولین این که ابلیس گرفتار آن می آید و گرفتار می کند ما را به این مشکل اصلی ظاهر بینی و ظاهر است. یعنی ظاهر آدم رو که دید به همون ظاهر بسنده کرد بعد از این که ظاهر رو دید مشکل دوم براش بشه اومد یعنی ظاهر را دید به دنبال رو کرد. قیاس کرد گفت آدم از خاک است، من از نار نار از خاک بالاتر من از آدم بالاتر اسمی شد چی؟ یه قیاس شکل اول ساده یه قیاس منطقی ساده یعنی اولو من قاسه ابلیس به ما گفتن اولین کسی که قیاس کرد ابلیس درستم گفتن اولان کسی قیاسکان و مود پیش انوار خدا ابلیس بود اول کسی که خیلی مولوی قشنگ میگه اولان کس این قیاسک ها یعنی قیاسی هم نبود اولان کس این قیاسک ها نمود پیش هموار خدا ابلیس بود گفت این سفید است این سفید است پس بنابراین اگر این سفید است حکم رو بر این بار میشود بر اون بار میشود پس این هم همان است یا این آنچنان است یعنی اون قیاس بر اساس ظاهر دوشهی رو به شباهت ظاهری میبینیم بعد حکم رو حمل میکنیم یعنی چی؟ خیلی ساده اصخایی میکنم آمیانه این رو میگم خیلی روانتر عرض میکنم به بخشید یعنی میگوییم که این فرد قط بلند است این فرد قط بلند است این به من خلاف گفته است پس هر کسی که قطب بلند است دروغ میگوید این کس قد متوسطی دارد انسان است پس اون هم قد متوسطی دارد پس اونم مهربان است چون هر کسی که قد متوسطی دارد مهربان است توجه دارید؟ یعنی بر اساس شباهتهای ظاهری حکمی را صلب و ایجاب کردن این قیاس ظاهر پندارانه با تل غلط. هیچ مبنای فکری و ندارد مبنای شرعی هم ندارد یه وقتی وجود اون که حضرت صادق برای اینکه خوب این رو نشان بدن این قیاس رو مخصوصا در با وحکام مواجهه شدن با ابو حنیفه رهبر فرقی مؤسس بنیان حنفیون رو مقابله کردن با ابو حنیفه و گفتن که با چه عمل می کنی؟ با چه حکم می کنی؟ گفت من به قیاس حکم می در استنباط خودم و در فتابا حضرت فرمودن بگو که ببینم آیا نماز مهمتر است در اسلام یا روزه؟ گفت ها تردیدی که ندارد؟ از سلات و میراج و از سلات و عمود و دین، چقدر میخواییم دراتون آیو حدیث بخوانم؟ که نماز، نماز، ان قبلت، قبل ما سواها قبول باشه، بقیه قبول میشه؟ حضرت فرمودن بسیار، به نظر جناب نماز اولویت بیشتری از روزه دارد، خیلی خوب، اگر این چنین است، چرا بانوان؟ در شرایط ویژه و محظوراتی که در ماه دارند نماز را نمی‌خوانند در ماه رمضان روزه را هم نمی‌گیرند اما هرگز موظف به قضا نماز نیستند اما روزه را باید قضا کنند اگر جناباری میگویید نماز اهمیت بیشتری داره پس چرا به جا آورده نمیشد قضا نمی‌شه روزه قضا نمی یک دو سه چهار پنج نمونه در دین فرمودند اما ابو هنیف سر رو پایین اندا فرمودن مهلن یا ابان نکنین کار رو انّتین ازا قیسه محق اگر بخوای با این قیاس با دین رفتار کنی دین رو محق میکنی یعنی دین رو نابود میکنی این روش وجود اونبار که امام صادق و فراوان از زموات مقدسه محمد و آل محمد در نشان دادن مبهس قیاس فراوان داریم که بماند. ابلیس ظاهر آدم رو دید بر اساس ظاهرپنداری و ظاهرگرایی و ماده پنداری قیاس کرد ماده وجودی خودش و آدم رو حکم به خودش داد دیگه جان و روح و علم آدم الاسما و را ندیده گرفت اونها رو ندید و حکم به ظاهر کرد خب از دل این ظاهرپنداری خوب دقت کنید از دل این ظاهرگرایی و قیاس چی بیرون اومد؟ کبر استکبار یعنی حالتی داد در نفس او حالتی دست داد که یرا او کبیرن و او حقیرا یعنی حالتی دست داد که خودش رو بالا دید برتر دید و غیر خودش رو پایینتر و حقیرتر دید شک نکنید ازیزان این سیر رو ما تو زندگی طی می‌کنیم. یعنی جایی که گرفتار ظاهر شدیم جایی که به دنبال اون قیاس آمد تردیدی نکنید که به دنبال آن کبر هم میآید و خوی شیطانی در وجود ما میاد اما چون امامون قدر زیبا این رو بازگو میکنن در قسمت های بعدی من به همین حد قناعت میکنم این بعد مبتلا شدن ما به چبر رو از زبان همیر در قسمت های بعدی با اون شیوایی و بیانی حضرت بیان حضرت بازگو میکنیم و انشالله میخوانیم خدمت دوستان فرمود اعتراضت الهمیه ففتخر علا آدم به خلقه و تعصد علیه الاصله بعد یه جمله حجیب سنگینی رو اما میفهموند فعدو الله امام المتعصبین و صدف المستکبرین فعدو الله دشمن خدا یعنی امیر المومنین سریحا عنوان ابلیس را عدو الله مطرح میکنن شما در آیات شریفه می‌خوانید که انه لکم عدو مبین شیطان عدو شماست اینجا ما من عدو الله چرا عدو خداست امر مستقیم خداوند را زیر پا می‌گذارد خب آیا هر کسی امر خدا رو زیر پا گذاشت دشمن خدا میشه نه خداوند امر کرده است که این کار رو انجام بدید اقم استلاحی کسی نماز نمیخونه آیا این دشمن خداست؟ نه این که دشمن خدا نیست باید ببینیم چرایی نماز خواندن اون نخوندن اون چیست اگر کسی نماز نمیخوند و علت نماز خوندنش مثال زدم علت نماز خوندنش ای اینه که حالت داره سستی داره تنبلی داره تاخون داره بالاخر ساعت 2 شب میخوابه نمیدونم یک شب میخوابه دل مشغولی هایی دارد بعد صبح میخواد نمیدم ساعت 9:35 5:35 بلند شه ازان صبح اصفهان رو در کنه نماز بخونه رفت شیرین و خوش رو نمیتونه درک کنه به کسی میگفتیم آ تو کی نماز میگویی من همیشه در طول سال ساعت 7 صبح نماز میخونم من حرف مردیه کیه؟ من همون هفت بلند میشم نماز میکنم کاریم به وقت ندارم وقت ما مشخص ثابت اینطوری نماز میخورد مثلا تصور بفرمایید. ببینید این انسان به این نمیشه گفت که اهاد خدا این مشکل داره ضعف داره این سستی داره که چنین حالتی رو دارد. اما یه دومی هست نماز نمیخواند میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه نماز نوز وبللاش چیز بیخودیه. اصلا نماز یعنی چه؟ نماز اصلا معنا ندارد. میگید او خداوند گفته است نماز را میگید نه خدا نماز نگفته است دروغ این حرف یا نعوذ بالله نعوذ بالله اگر خداوند هم گفته است به جان نگفته هست. یعنی انکار اعتقادی به نماز در قبال خداوند دارد એમ یعنی من بهتر میفهمم از خداوند نعوذ بالله این میشه والله یعنی این مخالفتی که مبتنی بر انکار باطنیست این میشه چی؟ عداوت با خدا اون اولی فسق است اما این دومی کفر است یعنی این کسی که مقابل خدا میسته میگه آقا امرت بی است رد امر خداوند میکنه این کفر داره این ففسقه انا امر ربه، بعد میشه و کان منال کافرین اما گاه نه یک کسی تمردی میکنه نه بر اساس اعتقاد بر اساس دیگه حالا بالاخره زعف و شهوات و امیال این فسقم و نیست توجه دارید کار شیطان بالا گرفته است یعنی اختلاف فکری با خدا دارد مقابل ذات از بی خوبون می ایستد و چنین سخنین رو بازگو میکند. کند و مدعی اونی که من بهتر فهمیدم ماجرا این است نقوض و عجیب این ماجره خیلی عجیبه عزیزا می میستد مبنای فکری خودش رو در پیشگاه ذات باری تالا مطرح می کند و مواجهه می کند با سخن الهی کافرانه به صحنه می آید نه اینکه حالا یه تمرد و انچنانی رضا میشه عدو الله این یک دوم اینو در بین آیات شریفه قرآن هم میبینید عزیزا مثلا در مورد خود پیامبر در مورد نبی مکرم میبینید خداون فهمت رسول. اطاعت کنید خدا را اطاعت کنید رسول. و من یعسل الله و رسوله اطاعت پیامبر اطاعت خداست معصیت پیامبر معصیت خداست محبت پیامبر محبت به خداست محبت به خداست نصرت پیامبر نصرت به خداست ایام مناسبت دارد اون حدیث زیبایی رو که شما بارها شنیدید که وجود نازنین نبی مکرم در حق ستیغه طاهر مطرح کرده فرمودن اون جمله زیبایی که فرمودن من آزا فاطمه فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله هر کسی که فاطمه رو ایزا کند منایزا کرده است و هر کسی که ایزا من کند ایزا خدا کرده است و کسی که ایزا که خداوند کند جایگاه او قعر دوزخ الهی و قهر خداوندی است ببینید؟ می گید حب محبوب خدا حب خداست این محبت از محبت ها جداست اگر کسی با ولی خدا محبت می کند محبت با خداست اگر کسی با ولی خدا عداوت می کند عداوت با خداست این عظمت الهی الهیست تریلی هم در این جهت نیست مشاهده فرمودید اینجا فرمود فعدو والله عدو خداوند دشمن خدا چرا؟ چون ابلیس نه تنها با امر خداوند عداوت کرد بلکه چی؟ با آدم هم عداوت کرد با فرزندان آدم هم عداوت می کند نزا الله فرمود فا ادوالله امام المتعصبین این الله و این ابلیس چقدر تابیر زیبایی رو امام دیگه پرده رو بر می دارن امام المتعصبین این امام متعصبین است امام یعنی چی؟ جلودار پیشوا پیشوای متعصبین همان تعصبی که سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کارخونه هاشامی است و سلف المستکبرین سلف خلف به پیشینیان سلف به آیندگان خلف و سلف المستکبرین این جلودار و پیشینه اهل مستکبرین است الذی وضع اساس سبيعه این همانیست است که اساس و بنیاد عصبیت رو گذارد و الله ردا و و با خداوند منازعه کرد با خداوند ستیزه کرد در این که بتواند اون جبریه تجبر و اون کبریایی الهی را ادعا کند و به نسبت بدهد، و در لباس تعزوز درهت درعد جامعه به کردن است و خاص اون لباس عزتی که از آن خداوند بود بر تن خیش کند دیروز هست کردم ازیزان تکرار میکنم ببینید از و کبریا از آن خداوند است و بس چرا؟ چون عزیز اون است که هرگز شکست ندارد المنیع الذی لا یغلب اون توانمندی که هیچ مغلوبیت نداره در مورد جزات خدا چنین تصوری وجود ندارد چون تمام موجودات ممکنن و در ذاتشون فقه را دارن اصلا ماهیتن فقیرن موجودات کبریایی از آن خداوند است چون تمام موجودات و الله من ورائه محیط در احاته که خداوندند اول قاهر و فوق باده لذا اصلا تمام موجود انسان ها نمیتوانند ادعای کبر برا بکنن و ادعای برتری کذالک یتبو الله قلب کل متکبر جبار خداوند مهر میزند و پلم میکند این دل های متکبرین رو مگر می شه اصلا چنین چیزی رو ادعا کنند موجودی که در ذاتش فقیره گاهی در عبارات داریم اعوذ بک خوب دقت کنید اعوذ بکم من نفثل ال... کبر پروردگار را به تو پناه میبرم از باد کبر یعنی این کبر یه است، یه است که میاد تو وجود انسان رو یه بادکنک رو بزرگش میکند درشتش میکند به جا هم که بزنی صدای میکند میترکند یه توهم یه وهم بیشتر در وجود انسان نیست نفحه کبره امام فرمود و در از تعزاز و خلع قناعت تزلل و جامعه تزلل رو از تنفیش بدرآوند حالا الا ترون كيف سقرنا اهو بتكبره و وضعناه بترفه ما یه قانونی داریم عزیزان در شهر خیلی عجیب این قانون من اینو گفتم یه وقتایی در تفسیر خدمت دوستان قانونی داریم به نام المقابلت و به بنقیز المقصود یعنی در پیشگاه خداوند هر کسی خلاف قوانین الهی برای هر فکر و خیالی عمل می کند نتیجه برای او چی میشه دقیقا محکوس میشه. عجیبه این رو باور کنید بزرگ بارا این عجیبه این یعنی ببینید ساده ارز میکنم. اگر خداوند فرموده صدق صدق اگر فرموده از خدا کاذب را هدایت نمی کند اگر پیانبر دست ان نجات و فسد کما ان الهلاک و نجات در راستیست و هلاک در دروغ هست تردیدی وجود نداره این حکم تکوینیست نه تشریعی حساسا یعنی امکان نداره کسی از دروغ به نجات برسه اگر کسی از دروغ می رود که موقعیتی پیدا کنه قطعا مقابله با نقیز مقصودش میشه یعنی به خلاف مقصودش می رسد گاهی روی این حکم وزم میشه یعنی تصور بفرمایید فرموید بالاخره کسی فکر میکند که آقا نعوذ بالله نعوذ بالله نیست تو ممرکت ما نیست تو مسلمان ها نیست این فکرها اما خیلی جای دنیا هست فکر میکند که این جناب اسرائیل چرا دیو کرده بالاخره این پدر نوید سال سن شده. سروت هم رسیده است به اون کرور کرور و اون چنانی وز ما هم روبراه نیست اما جناب اسرائیل هم نمی‌آید که اوزا ما بهتر بشه خود خب حالا اگر نمیاد میشه ما هم یک همکاری بکنیم کمکی بکنیم با جناب اسرائیل که زودتر بیاید ناوزو بالله یک کسی اقدام میکنه به قتل پدر به مورسش یعنی به قتل کسی که میخواد از او چه برسه بهش ارث برسه اگر چنین اقدامی شده و مشخص شد اولین اقدام حقوقی که اینجا انجام میشه چیه القاتلو لا يرث و ابا اگر کسی قتل پدر کرده است یا هر مورثی را کشته است اولین چیزی که سلب میشه از او ارث نمیبره قبل از اینکه بحث مجازاتش باشه ارثش قطع میشه یعنی تو به بنقیزل مقصو همونجا جراش میگیره تو به این انگیزه کردی جرا تو میگیری این خیلی نکته عجیبی است تکبر اون کسانی که مبتلای به آفت ابلیسی میشوند ابلیس تکبر کرد که چی رو ثابت کند چرا این کارو کرد یعنی گفت این آدم خاک است ما ناریم ما برتر و چنین و چنان لذا در قبال آدم توازه نکرد که برتری خودش رو در عالم و تفرشتگان ثابت کند. نتیجه چی شد؟ خدا لهش کرد. گفت فخرج فا انکر رجیم برو بیرون جایگاهی نداری دیگه اینجا تو. اِنَّا لَيْكَ الْلَعْنَةِ الَا يَوْمِ الدِّينِ تا قیامت قیامت لعنت من بر تو باد. یعنی نتیجه دقیقا معکوس شد نتیجه دقیقا منعکس شد خیلی زیبا فرمود الا ترون کیف سقرره الله بتکبر آیا شما ندیدید که چگونه خداوند کوچک کرد ابلیس را به تکبرش میبینید می‌بینید که تضادی بین لفظ وجود داره چگونه خداوند کوچک کرد ابلیس را به تکبر یعنی اون خاص بزرگی خودش را اثبات کند با تکبر اما خداوند تحقیر و حقارت و خردی او را امزا کرد و وذعه او به طرفه و, و چگونه خداوند وضعش کرد وضع یعنی پایین آوردن رفع یعنی بالا رفتن یه چیزی بالا بلند میارید پایین میشه وضع از این ماده تواضع رو میگیرید یه چیزی پایین است میذارید بالا میشه رفع میشه طرفه ابلیس خودش خود را بالا ببرد اما با خداوند او را به تمام معنا ملعون ازل و ابدش کرد که همیشه بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لعین فرمود و وزعه او به طرف شععه فجعله فی دنیا مدهورن خداوند ابلیس رو در دنیا خار کرد مدهور مطرود و له في الاخره سعيرا و در عالم آخرت هم سعير و آتش گداخته خودش رو برای ابلیس کرده است بسیار زیبا من همین قسمت کوتاه رو بگم و تمام کنم هرزم رو اراد الله ان یخلق آدم من نور ليخطف اب صرذ یا و و يبهر العقول رضاه او طيب ينياخذ الانفاس حرفه لفل ببینید الان گفتیم آدم به چی نگاه کرد و بعد قیاس کرد به ظاهر آدم ابلیس به ظاهر آدم قیاس کرد گفت این از خاک است خداوند میفهمد اگر ذات باری میخواست ماهیت و جنس وجودی آدم را از خاک قرار نمیداد. یه ماده ای می آفرید ذات باری حالا؟ زیبا خوشمنظر، محتر لطیف جذاب و ماده وجودی آدم را از اون قرار میداد که این ماده ای نباشه که تعفن فونت. ببینید خدا وقتی میگه گل میگه همه مصنون گل گندیده سیاه خب بالاخره این وجود و این جسم میدانیم هنگامی که مبتلای به بعض از امراض و بیماری ها میشیم حال روز خودمون رو میدونیم که نزدیکان هم به زحمت ما را به حرمت و کرامتمون تحمل میکنن وقتی که روح از این تن میره 24 ساعت دیر شده میبینیم که میگن حرمت مؤمن رو نگه دارید زود مراسم رو انجام بدید که این بدن نمانه تأفونش اذیت میکنه خداوند اگر میخواست از این جسم نمی آفرید آدم را در اینجا میفرماد از ماده ای آفرید زیبا نورانی جذاب معتر اگر خداوند میخواست خلق میکرد آدم را از نوری اصلا یختفل ابسار خاطف الاخذو بستلاب سریع یعنی یک چیزی رو با قدرت گرفتن و روبودن و بردن میشه خطف اگر خدا میخواست آدم رو از نوری میآفرید چه چشم رو میروبود زیبایی اون و یب هرالعقول انسان رو مبهوت میکرد بهره و منوی بهته مبهوت میکرد و اون یعنی زیبایی و جذابیتش و تیب نیاخوزالانفاس و تیب و پاکیزگی که عرف و بوی اون انسانها رو عرض به خدمتون دیگه فرومی برد در زیبایی خودش اگه خدا میخواست این کار رو می‌کرد و لو فعلا له الاهنا شاید اگر خداوند این کاری می کرد دیگه ابلیس دوچار این خوب دقت کنید دوچار این حرف نمیشد که این از خاک است و من از خاک نیستم ولو فعلا زلت له الاهنا و لخفت البلوه فیها علی دیگه این ابتلا شاید پیش نمی اومد اما ولیکن الله سبحانه یعبتلی او به بعض ما یجهلون اصله عزیزان جمله اینجا وجود داره بستکن دهنده اما خدا قانونش اینه که بندگان خودش را می آزماید به یک چیزهایی که اصل اون براشون مجهوله اصلش نمیدونن یعنی به تعبیری اون علت نهایی و فلسفه بنیادی اون رو شاید ندانند تمیزن به اختبار لهم تا مشخص کند تا کجا می آیند و تا کجا نیستند و تا کجا حکم و فرمان و او را می پذیرند و نفیان للإستقبار انهم و برای اون که استکبار رو از جانشون ببرد و ابعادن للخویلا هم تا اون خویلا و اون قرور و فخر رو از وجودشون بدر آورد یه توضیح مختصر رو به ماکان من فعل الله بمونه برای فردا خدمت دوستان عزیز چی میگهد امیرون ماهی نمیفرماید گاه عزیزان در قواعد الهی فرامین الهی موضوعاتی که ذات باری تا مطرح میکنند ما فلسفه بنیادی و اصیلش رو نمیدانیم یعنی ما میاییم حکمتش رو میگیم میگیم مثلا اگر تعداد رکعات نماز درکعت نماز صبح هست شاید حکمت این باشد حالا شاید حتی از معصومم بگیم این حرف رو اما این علت نیست ما فلسفه این که دو راکت نماز هم بخونیم نمیدونیم سر راکت مغرب چهار راکت شام ما فلسفه حقیقیش رو نمیدونیم ممکنه توجیهاتی داریم به حکمتهایی داریم اما اون اصل رو نمیدانیم. در بسیاری از موارد ما اون حقیقت بنیادی و فلسفه عمیق رو نمیدونیم اما چون کلیت مطلب را پذیرفته ایم میدونیم که نماز امری است فرموده ایمان به ذات باری تعالی و حکمت الهی و ضرورت نماز داریم حالا این مقدار دو و سرکت این علت رو نمی اینجا جایی است که محل آزمون بندگان خدا شروع میشه یا به دلیل این عقبه ایمانی که داری میگی ربنا آمنا و یا اون اونوفیت اون اون قرور درونی اجازه نمیده میگی نه این معلوم نیست برای من یعنی اون به اسطلاح شیطنک زیرککی به تعبیر شوهرها میاد درون انسان مانع پذیرش میشه فرمود ذات باری تالا گاه به این شیوه بندگانش رو ذات حق ابتلام می کند به اموری که اون قایت و فلسفه رو نمیدونن در بعض از مسائل اما کلیتش رو میدونن، ریشه ها و بنای اصل رو در اطاعت میدونن، از مهمترین سحنه است که اینجا مشخص می شود در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اصحار چاکری اینجا جاییست که دیگه سر رو باید فرو بیاری بگی الهی کفابی عزن ان اكون لك عبدا و کفابی فخرن ان تكون ربا این یه ابتلاع مهمیه که برای انسان میری میگن حج بحل سازنده از بنیاد دین رو قوی میکنه وجود انسان رو آه میگن برو جامتو هستن به بدر کن چشم وقتی که رسیدی به اطراف خانه بچرخ از این طرف بچرخ با این شکل بچرخ هفت دور بچرخ بعد که تمام شد برو اینجا به ایست درکت نماز بخون بعد برو بین صفا و مروه بدو بیا برو به عرفات برو به مشعر برو به منا چنین اعمالی رو انجام بده ابلیس رو به این تعداد بزن بعد همسرت رو بتراش زیر تیغ بگذار بزنند این زیبایی ظاهری تو اون فلس... بله میگیم آقا برای این حکمت حج رو میگیم برای دوستان هم نرمفزار حج رو میگیم اما در خیلی از این موارد اون فلسفه اصیل را نمیدانیم اما میدانیم وقتی این حج تموم میشه وقتی میای میدوی میچرخی اینسو اونسو وقتی تمام میشه احساس میکنی دریجه ها و و افقهای عظیم معرفت رو خداوند پیش روی تو برداشته است و یک به یک هجاب های نفس رو برات زدوده است به کناری زده یعنی از این ابتلا موفق بیرون آمدی سربلند بیرون آمدی باشد انشاءالله در ادامه بس. مطلب رو خدمت دوستان حزیز بازگو میکنم پروردگارا به عظمت و کرامت خودت توفیق پذیرش فرامین خودت رو و تسلط بر نفسانیت رو بر اونوفیت نفس رو در تمام سحنه زندگی به ما انایت و کرامت بفرما